مشتی جبار خم شده بود زیر نور فانوس جلو می رفت و دوروبرش را می و بیالی ها آرام آرام پشت سرش راه می آمدند. اسماعیل گفت نکنه مشتی جبار چیزی شده باشه. پسر مشتی سفر گفت چیزیش نشده خولبازی در میاره. اسلام گفت مشت جبار چته؟ چرا چی می مشتی جبار نشست زمین رو یک دفعه داد زد اینهاش پیدا کردم پیدا کردم مردها حلقه زدن دور مشتی جبار و خم شدند مشتی جبار زمین را نشان داد و گفت میبینین همینجا بوده که بردنش میبینی مشتی اسلام میبینی مشتی بابا اسلام گفت راست میگه یه چیزی اینجا بوده که زمین رو گاد کرده کت خدا گفت چطور شده چجوری بردنش؟ که ها بردنش؟ پسر مشی سفر گفت حتما پروسی بردنش زودتر نجم بیدین اومدن و بردنش مشتی جبار دلا دلا رفت و رسید کنار دره و خم شد و فانوس را برد بالا و توی دره را نگاه کرد و داد زد آی مشت اسلام ای کت خدا اینجا توی دره هست و ها خود را رساندن کنار دره و خم شدند. در شیب دره صندوق فلزی گنده یک وری افتاده بود و زیر نور ماه می درخشید اسلام گفت خودش مشت جبار مشت جبار گفت آره خودشه خودشه اول مشت جبار و بعد مردها از شیب دره رفتند پایین. مشت جبار دوربر صندوق چرخید و گفت آره خودشه پسر مشتی سفر نشست زمین و فانوس خاموش را از دست اسماعیل گرفت و روشن کرد و رفت جلو. گشتی دور صندوق زد و نشست کنار دیگران و فانوس را گذاشت جلو روی خودش. اسلام گفت کیا انداختنش اینجا؟ مشتی جببار گفت اول که من دیدم اینجا نبود اون بالا بود. کت خدا گفت حتما کار فروسی هاست. اسماعیل گفت خوب شد که پیداش کردی. مشتی بابا چپق و کیسه توتونش را در آورد و گفت فکر می کنی چی چی باشه مشی جبار عبدالله گفت یه صندوق دیگه یه صندوق علبی مشتی بابا گفت معلومه که صندوقه ولی چی توش هست عبدالله بلند شد و دور صندوق را گشت و گفت در که نداره وقتی در نداشته باشه که نمیشه فهمید چی توش هست اسماعیل گفت وقتی در نداره تو هم نداره که پر باشه یا خالی باشه. عبدالله گفت نکنه ماشینه که چپه شده و این شکلی شده. اسلام گفت نه بابا ماشین نیستش. اگه ماشین بود که چرخ داشت. کتخدا گفت چیز همون چی؟ اسلام با تعجب گفت چیه هموم؟ کتخدا گفت از اونا که تو شهر پشت بام آجاقا عنایت دیدیم. اسلام گفت نه اون توش خالی بود و آب ریخته بودن. این شکلی هم نبود پسر مشتی سفر گفت این چی نیست؟ همه آهنه کت خدا گفت آهن این شکلی کی دیده؟ مشتی بابا گفت و تازه به چه درد میخوره؟ مصرفش چیه؟ پسر مشتی سفر گفت میشه ازش دیگ درست کرد بادیه درست کرد و خیلی چیزای دیگه هم میشه درست کرد اسلام در حالی که با حالت جذابه به صندوق خیره شده بود گفت نه این آهن نیستش این یه چیز ساده نیستش دیوارهاشو میبینین شبکهاشو میبینین دکمهاشو میبینین کت خدا گفت مشت راست میگه این باید یه چیزی باشه واسه خودش یه چیز خیلی مهم هم باید باشه پسر مشتی سفر گفت هرچی هم باشه خیال نمیکنم چیز به درد بخوری باشه عبدالله گفت به درد بخور بود که پروسیا دورش نمیانداختن. اسلام گفت شاید زورشون نرسیده ببرن کت خدا گفت تو رو خودمش اسلام پاچاربین چی هستش؟ اسلام بلند شد و رفت طرف صندوق دست مالید و وارسی کرد نشست پهلوی صندوق با دگمه هایش بر رفت ماه روی صندوق میتابید و ذرات نور به هر طرف پخش میشد. اسلام پیش خود گفت چی هستش؟ چی میتونه باشه؟ سرش رو برد جلو و صورتش رو چسبان به صندوق و بعد گوشش رو گذاشت و گوش داد. یک دفعه با عجله بلند شد. مردها نگاهش کردند. اسلام گفت بلند بیا گوش کنید؟ کت خدا بیا مشتی بابا، بیا اسماعیل مردها بلند شدند و رفتند جلو و گوشهایشان را چسباندند به بدن یه صندوق. اسلام گفت میشنوید؟ کت خدا گفت، آره آره. پسر مشتی سفر گفت، من که چیزی نمیشنفم. اسلام گفت، خوب گوش کنی. خودش هم نشست پهلوی دیگران و گوشش را چسباند به دیواری صندوق و دوباره گفت، میشنوین؟ مشتی بابا گفت، من یه چیزایی میشنوم اسمایل گفت، راست میگه، یه چیزایی هست. پسر مشتی سفر گفت، من که چیزی نمیشنوم اسلام گفت، گوش میکنی کت خدا؟ کت خدا گفت، مثل اینکه توش باد میاد. مشتی بابا گفت، نه خیر، صدای آب میاد. اسماعیل گفت، نکنه یه مشت زنبور و ریخته باشن این تو. پسر مشتی سفر گفت، من هیچ چیز نمیشنوم. اسلام سرش رو بالا برد و گفت، نه، صدای چیز دیگه نمیاد. این تو گریه میکنه. صدای گریه و زاری میاد مردها گوشها را چسباندند به بدنه صندوق و با وحشت بلند شدند کت خدا گفت آره به خداوندی خدا صدای گریه میاد مشتی بابا گفت یعنی میگی این تو یکی هست که گریه و زاری میکنه اسلام گفت این توی هیچ کس گریه و زاری این یه ذریه ذریه یه امامزاده. نیبینی چجوری هستش صدای گریه ها رو که شنیدین پسر مشتی سفر گفت من که نشنیدم مردها عقب عقب رفتن رفتند و نشستند زمین کت خدا گفت حالا چه کار بکنیم مشت اسلام؟ اسلام گفت میبریمش بیل. مشتی بابا گفت ببریم چه کارش بکنیم؟ ببریم و بندازیم پهلوی اون یکی تو علم اسلام گفت حالا میبریم و بعد میگم که چه کار بکنیم از جاده صدای شیهی اسب شنیده شد پسر مشتی سفر با عجله رفت بالا یک پروسی غمه به دست دورو بر گاری میپلکید و آنها را میپایید تا سر و کله پسر مشتی سفر پیدا شد مثل باد در رفت و در تاریکی هاشیه در ناپدید شد نزدیک بیل که رسیدند شب از نصفه گذشته بود نن فاطمه و نن خانوم با دوتا فانوس روشن آمده نشسته بودند کنار باغ اربابی هوا سرد بود و ماه رفته بود طرف مغرب اسلام ی اسب را گرفته بود و میکشید مردها همه پای پیاده میآمدند و هن و, هن و هن کنان گاری را به جلو حل میدادند صندوق توی گاری بود ننه خانم و ننه فاطمه که بیرون ده نشسته بودند بلند شدند و نزدیک آمدند اسلام گاری را نگه داشت و مردها دست کشیدند و نفس نفس زنان جلو آمدند ننه خانم گفت این چیه مشت اسلام اسلام گفت این, این امامزاده است مشتی خانم ننه فاطمه گفت چی؟ امامزاده؟ اسلام گفت آره این زریهه یا آغاز یه مامزاده است ننه خانوم با عجله رفت و فانوس را گرفت بالا و با تعجب صندوق را نگاه کرد و زد به سینه و گفت یا غریب القربا یا امام زمان ننه فاطمه گفت اسلام علیک یا محمد یا حضرت یا فاطمه یا علی اسلام گفت اسلام علیک یا سار الله کت خدا گفت السلام علیک یا امام القربا مردها نزدیکتر شدند و دور گاری حلقه زدند پیرزنها نشستند روبروی گاری اسلام رفت بالای گاری و صندوق را بوسید و گریه کرد مردها و زنها گریه کردند اسلام با صدای بلند نوحه خواند مردها بلند شدند و سینه زدند و نوه خواندند مشی سفر از خواب بیدار شد و سرش را از سوراخ وسط بام آورد بالا و نگاه کرد و یلیها را دید که از خانه ها بیرون آمدند و به طرف بیرون ده راه افتادند صبح که شد گاری را آوردند جلوی خانه اسلام پیرزنها زنها زدند و نشستند دور گاری کت خدا و اسلام و مشری جبار رفتند که برای صندوق جا پیدا بکنند مشری جبار گفت میگم پشت خونه مشری سفر از همه جا بهتره اسلام گفت هیچ هیچم بهتر نیست یه جای چشمگیر لازم داره تاریک از بیرون دم دیده بشه کت خدا گفت راست میگه میدانچه گوده تازه کسی هم از میدانچه رد نمیشه مشری جبار گفت پس کجا بذاریمش اسلام گفت بلندی کنار علمخانه از همه جا بهتره کت خدا گفت بار که الامشت اسلام خوب گفتی مشتی جبار گفت خیلی خوب ببریمش کنار علم خانه برگشتند و دوباره رفتند جلوی خانه اسلام و گاری را وردند سر کوچه اول و از پشت خانه کت کتخدا رد شدند و رسیدند کنار علم خانه مشتی بابا گفت چه کار میکنین؟ میخواین ببرین تو علم خانه؟ اسلام گفت نه میبریم بالای آن بلندی دور تا دورش را هم دیوار میکشیم و پاییزم سخفش رو میپوشونیم کت خدا گفت خوب فکری کردی مشت اسلام خیلی فکر خوبی کردی اسلام گفت امروز هیچ کس سهران نمیره تا این کار به جایی برسونیم کت خدا گفت آره هیچ کس نمیره روز جامم که هست اسلام کلاهش رو برداشت و گذاشت روی گاری و رو کرد به مو سرخه و گفت بودو چند بیلو کلنگ بیار کت خدا با یک تیله دور بلندی خط کشید و گفت چهار تا دیوار میسازیم نه مشتی اسلام اسلام گفت آره چهار تا دیوار میسازیم کتخدا گفت این تیک زمین کافیه اسلام گفت البته که کافیه مشتی بابا گفت چند روزه تموم میشه اسلام گفت همین امروز تمام میکنیم مشتی بابا گفت کی را آب بیاره کتخدا گفت همه این کار خیلی خیلی جواب داره عوضشو همه از امام حسین میگیرن اسمایل گفت من آب میارم گل درست میکنم و هر کار دیگه ایم که بگیم میکنم عبدالله گفت منم آب میارم ننه می گفت یه امامزادی حسابی درست میشه علمها را میاریم بالا ها و پنجه ها را هم میاریم میچنیم دور ذری؟ ننه خانوم گفت یا امام حسین دخیلت هم اسلام گفت ذریر رو میاریم وسط و بعد دیوارها رو میکشیم بالا. مردها رفتن کنار گاری. موسرخه با چند بیرو پیدا شد. پیرزنها رفتن طرف علمخانه. مشری زینال با چوب های زیر بغل آمد و نشست جلوی در علمخانه. آفتاب پنج شد و از بیل کسی به صحرا نرفت. مدتی از ظهر نگذشته بود چهار تا دیوار گلی کوتاه بالای تپه ساختند. مردها آمدند کنار استخر، دست و پاها را شستند و ردیف شدند توی سایه. زنها کنار سنگ سیاه مردشوری دیگه بزرگی بار گذاشته بودند و آش نظری غلغل میجوشید و بخار میکرد. کت خدا گفت دیدین چه زود تموم شد. مشتی بابا گفت به خدا که معجزه بود. اسمایل گفت آقاها کمک کردن ننه خانم گفت این دیگه کار خداست اولیا انبیا خودشان کمک کردن ننه فاطمه گفت خیلی خوف شد مریضا رو که نمیشد برد به نشانگاه بعد از این میاریم اینجا کت خدا گفت میدونین یه نفرم متولی لازم داره؟ بابا علی که سرش رو از دربچه دیواری آورده بود بیرون گفت مشی زینال واسه این کار خیلی خوبه مرد ها برگشتند و مشی زینال رو نگاه کردند. اسلام گفت: اگه یه نفر سید داشتیم که خیلی بهتر بود. پسر مشی سفر گفت: چطور بریم یه نفر از آباد بیاریم؟ مشی زینال گفت: من مادرم سید بوده، ننه خانم میدونه. ننه خانم گفت: آره، خدا بیامر سید فاطمه که میرفت و محال گدایی میکرد. کت خدا گفت: خدا را شک که این یکی کارم درست شد. پسر مشی سفر گفت: از گرسنگی دارم می میرم زنها بادیه ها را آوردند ننه فاطمه دعا خواند زنها بادیه ها را چیدند روی زمین نن خانوم آسینهایش را زد بالا و رفت سراغ دیگه آش و ننه فاطمه تکه های نان را بین مردها قسمت می کرد غروب که شد ننه خانوم و ننه فاطمه رفتن توی علم خانه. اول شمایل بزرگ را آوردند بیرون و بعد علمها را و بعد پنجه ها و شهمدانها را شمایل را بردن دو تکیه دادند به دیوار روبروی در امامزاده. ساده تا علم را زدن به چارگوشه چهار دیواری. ها را گذاشتن توی شهمدانها و شهمدانها را چیدن روی صندوق و شهمدانها را روشن کردند. اسلام امامه سبزی پیچی دور سر مشتی زینال مشتی زینال های زیر بغل آمد و نشست جلوی درگاهی و شروع کرد به قرآن خواندن پیرزن‌ها رفتند سراغ مریضهای بیل، پسر علیل مشتی اکبر و خواهر عبدالله را روی دست بلند کردند و آوردند توی امامزاده ننه خانم به گردن ها زنجیر بست و زنجیرها را گره زد به دگمه های بزرگ صندوق و گفت گریه بکنین و از آقا شفاتون بگیریم. بگیرید دراز شدن روی خاک و گریه را شروع کردند ننفاتمی که وضوع گرفته بود آمد و ایستاد جلوی درگاهی و با صدای بلند گفت یا الله، یا علی، یا محمد، یا حسن، یا حسین از سلام علیک، یا الله، یا حضرت، یا علی، یا محمد، یا حسن، یا حسین اومدیم شفا میخواییم یا حضرت، یا امام، یا نبی، یا علی، یا الله مریض های بیل رو شفا بده خودت اونا رو شفا بده و که پشت سر نن فاطمه ردیف شده بودند دستها را بردند بالا و یک صدا گفتند آمین دو کامیون بزرگ تمام محال را می گشتند. اول رفتن پروس تمام خانه ها و چاه‌ها را نگاه کردند بعد رفتن سید آباد خاتون آباد ملک زاده، ینگیجه، حسن آباد میشو تمام خانه ها را گشتند. اما به بیل نرفتند. بیل کوچک بود. خیلی کوچک بود. از هزوان برمیگشتند که به سربالایی شور رسیدند، کامیون اولی ایستاد. دومی هم ایستاد. از کامیون اولی گروهبان آمریکایی پیاده شد و با دوربین بیل را نگاه کرد و اشاره کرد که به آنجا. گروهبانی که پشت سر آمریکایی ایستاده بود گفت اونجا خبری نیست آمریکایی اشاره کرد کامیونها راه افتادند طرف بیان. نزدیکی نزدیکی‌های غروب بود مردها نشسته بودند پشت ماشین سفر و گپ میزدند. صدای کامیونها را که شنیدند بلند شدند و دویدند طرف صحرا کامیونها ایستادند اول آمریکایی و بعد سربازها پیاده شدند و ریختند توی ده خانه های گلی و بام های کوتاه را نگاه کردند چیزی پیدا نبود آمریکایی رفت طرف علم خانه مشی اینار که نشسته بود جلو درگایی امامزاده شروع کرد به تلاوت قران آمریکایی رفت جلو و داخل امامزاده را که نگاه کرد فریادش بلند شد سربازها دویدند جلو و نگاه کردند آمریکایی اشاره کرد یکی از سربازها چمدانی را که دستش بود باز کرد آمریکایی رفت تو، زنجیرها را از گردن پسر مشتی اکبر و خواهر عبدالله باز کرد. پیرزنها آمدند تو و مریضها را بردند بیرون. امریکایی با زده دوروبرش را تماشا کرد و بعد شمدانها و پنجه ها را زد و همه را ریخت پایین. سرباز دوتا سیم از چمدان درآورد و بس به دوتا دگمه صندوق و سیمها را برد و برد. گره زد به یک جعبه فلزی دیگر که چند تا چراغ گنده داشت و بعد رفت پشت صندوق و یلی هم رفتند بالا و دور تا دور حلقه زدند و خیره شدند توی چار دیواری. آمریکایی پایش را گذاشت روی پایه کوچکی و فشار داد صندوق به صدا درآمد و نعره کشید چراغ ها روشن شدند و شعله کشیدند و یلی ترسیدند و عقب عقب رفتند آمریکایی نعره کشید سربازها ریختند و دیوارها را خراب کردند یکی از کامیونها آمد کنار بلندی و سربازها صندوق را بلند کردند و گذاشتند توی کامیون بعد برگشتند و, و ها را در میان گرفتند گروهبان کوداختی گفت اینو از کجا وردیم؟ کات خدا گفت از راه پیدا کردیم گروهبان گفت از کدوم را؟ کت خدا گفت، تو راه افتاده بود. گروفان گفت، کدوم یکی تن آوردین؟ اسلام گفت، هممان. گروهان به سربازها اشاره کرد و گفت، همه شونو سوار کنین. پسر مشی سفر که عقب‌تر ایستاده بود، داد زد و گفت، مشی جبار آورده. هممون نیاوردیم. مش جبار پیدا کرده اومد خبرمون کرد. همه شخصی رو گروفان گفت: مشتی جبار کدوم یکیتونه؟ مردها را نگاه کرد. پسر مسی سفر گفت: اونهاش و مشتی جبار را که کنار مشتی بابا و اسلام ایستاده بود نشان داد. سربازها رفتند و مشتی جبار را گرفتند و بردند طرف کامیون. آمریکایی سوار شد. مشتی جبار را هم سوار کردند. سربازها فوش دادند و سوار شدند. و یعلی‌ها ترسیدند و عقب عقب رفتند و پشت دیوارها پنهان شدند کامیونها ها که راه افتادند موسرخه به عبدالله گفت هوش به حال که از شهر نرسیده دوباره برگش شهر <تصفيق> کامیونها ها که دور شدند ننه فاطمه و نن خانم رفتند علم ها و پنجه ها و شمدان ها را جمع کردند و بردند توی علم خانه اسلام و کت خدا با بیل خاک ها را کنار زدند و شمایل را آوردند بیرون شب که شد مردها آمدند و جمع شدند کنار استخر زنها هم رفتند و نشستند پشت دیوار اسلام رفت بالای سنگ سیاه مردشوری و روزه خاند و یلی یعنی ها به خاطر زریح از دست رفته زار زار گریه کردند